حکایت پادشاهی پارسایی را دید، گفت هیچت از ما یاد آید، گفت ولی وقتی که خدا را فراموش می کنم، هر سودودان کش زبرخیش براند، وان را که بخاند به در کس ندواند